باب دوم در اخلاق درویشان حکایت یکی از بزرگان گفت پارسایی را، چه گویی در حق فلان آبد که دیگران در حق وی به تقن سخنها گفتند، گفت بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمیدانم. هر که را جام پارسا بینی پارسا دان و نیک مردنگار و ندانی که در نهانش چیست محتسب را درون خانه چه کار.